عطی که رفیق اونم گذاشتن تنها ما رو مجبور شدیم بگذرونیم تنها رو, رو آره تر شدیم از رفیق و خانه واده ولی دلیل نشد بزارین کنار اجر و دفتر خاطره تو سختیام و زدم و فهمیدم نباید وقت اون اجر به جمرکیام میخواد بگه من با جمرادم مهمی چون قجمره حسین خور زدم اصلا فکر نکن بکشم کنار از رفیق یا روزی برسه که بگم خیلی خستم خودتمو سال اینا زیاد هستن که فقط میگن خستم قلمم شکست سالم واسه اونی که با ذل شرط بزنه نه اونی که روی رگش خرط بزنه اونی که وا یه دختر اار بزنه با یه توش شناسم شنسییت ق بزنه مکم تر از میشه میدم با هم اون ادامه باقدرت توقدر دربیرم جلو با برنامه ذربانه قلب و من پ تو رپ با غذ کسی از بام نباشه انددم خدامه ها لازم به ذکر لغر میآی تو این جووری رب کنی میتونی صلتان هم باشیم بله ها رو میرم بالا محکم و سری خودتون مواظ باشی از دور نری نریناجی اومدم بدم براتون استخاره تا شاید کم ببرین فو استفاده آرو خت کردن شماها ها افتضاحول خوبک کردم استخاره. سمای جنورتیکاره چون ربت خونم یکی از خصلت زامه هیپو بمخزن همیشه میشه با خام همین چنده ای تا من فیلیفل به داهه بودن من اینجا براتون واسه افتخار هستی نی سیمباز یارو اینجوری نمیدیم حداقل مرزم باشه به پای مرگ هم میبینیم ولی نمیذاریم بمونه خون روی زمین چاغات وزوز نکن فقط همین تو توی اوج کروسم پایین پایینموت تو که گل میزنی لایر میخوره علی عزایی به جای اینکه بیا لاتیشو برکنی برس واسه خاطر یه سکون بری سیایی و بذار کناب بشیم پای درس و کتاب به این چیزو بابا بایی درست و بد کن بدن بارو رو روی سر دو مادت غند بساب ما همین دوران دوران تلایی مونه البته بگم زندگی تلایی بوده ما رپمونو ساختیم توی کوره راه ما بالاست برای شما خیلی دوره On a G, on top in Bolanin, hit سر پایین. ما با زندگی که داشتی منو سرپویم خدا بالا سرمون ولی تو این کار خود به فهمش نکن آدم ما, ما تا فین بالایی هیچی نگف پیس سرپویم ما با زندگی که داشتی منو سرپویم خدا بالا سرمون ولی تو این کار خود این. راست نبودی توی کار عجیبت الان بزرگ شدی با این فیت جدید. ای hey, بالا پوین کردی و کسی نهید. حالا من ساده با بون زنی کوچیکه جاید هر چیزیم شده خود بازی مثل رز دنیتون تو سربازی خیلی hey, ای لیسی دنوچو سنلو بازی تو سروازی یارو میگه دادا شمی یا چیزی میخواد سر دل خوشی یاد دلت میاد حالا کارت گیره میره و میاد ولی چی؟ غیبتش زیاد میگه کمک میخوام گیرم الان رد میشی جوری که غریبم و فلان اتفاقای بعدی داره سرت میاد میگیره رفیخ فقط شرندی به تو هم بمون با هم من بزو بگم برات نه کیا کشیدم چیا ساختم من از جنس یا هم بزو بگم برات نه؟ بزو بگم برات مرد من اونی نیستم که الان توی این آینه پس دیگه تو هم نترس بهش میگم دیگه نیاد بالا سر اصلا من آدم بدی نیستم او داد نزن به ماهایی که فیریک هم دوشون قسم خیلی یا به اون میگن مارم ببر فکر میکنه خوش میگذره خیلی خفن نترس ازم یو چشت و تار کنم ببین کیم هم ازم